بله حباب، خب پسر عزیز، گل گلم مشکلی داره، بگو ما برات حل کنیم میدم بگو دادی من دارم از تنهایی میمیرم بابا دادی چطور؟ آخ ما به قربان شما بگردیم عزیز دل بابا بیا توی بغله بابا ما از تنهایی درت میاریم خب یک جوری که اصلاً یادت بره تنهایی چی هست نه بابا بیخیال تنهایی اونجوری که نه بابا دادی اندی تنهای این تنهایی اینجوری دیگه آخه تنهایی اگه دادی از تنهایی دیگه آه. بابا ازدواج و زن و این حرف ها دیگه اون که تنهای به حساب نمیاد عزیزه بابا چیلو تنهایی یعنی مثلا ما به خلاک می رویم تنهایی می رویم ای بابا دادی یعنی؟ تو دردوی منو اصلا جدی نمیگیری هیچ وقتا دوستت ندارم اصلا دادی یعنی چی عزیز اه. دل بابا بگو عزیزم بیا بیا این آلبوم سیغه خودمون را آه. بیاوریم شما ببینید دلت بازش خیلی ممنون دادی واقعا که بابا نمیخوام بابا ما اه. چه کار بکنیم دیگه میخوای از این به بعد با هم بریم دست به آب که شما تنهایی بهت پشار نیاره میخوای دادی بابا غلط کردم درد دل کردم پیش دیگه یه زن خواستی واسه ما بگ خیلی خیرات فراوانی هم برای داماد هست هم برای پدر داماد خب بگو ببینیم کیون میخوای شما عزیز دل بابا؟ بگو ببینم بابا ببین بله. دادی آخه من یه دختری رو میخوام که کم توقع باشه مگه ما دفن دختر سردار خوشحال زاده رو در نظر نگرفتیم شما نخواستی. بابا اون که میگفت من بعد از زواجم هم جلوی تو چادرم رو بر نمیدارم آخه این چه بده چه دردیم اشکال نداره که اتفاقا با چادر به شواب هم نزدیک تره دکن نه, نه دختره سردار. تجدد زاده را بگیرم برای کیه؟ متاسفانه چادر نداره ولی باباش مال منال خوب داره ها. دادی به نظرت اینه. چطوره؟ چطور دختر یه تو دیدیش دادی؟ بله بله دختره بسیار شایسته و خوبی به نظر میاد. ما البته بیشتر به خود سردار تجدد زاده نظر داریم تا خود دخترها. ولی خب دادی ببین بله. های این دوره زمونه خرج داره. هدی بله ده... باید به من کمک کنی. من واسه زنم کم نمیذارم. ما گفته باشه بله هر کمک فکری و معنوی که لازم باشه در خدمت شما هستم. بفرمایید. کمک فکری بله. نمیخوام. دادی اون واحد دوبلکس تو بولک بله. فهرمانی هر میخوام ماشینم هم از یه دبلیو پرش نوبت باشه. میخوام زن بگیری او پدرات رو بات بخونه مگر سفارشات بودرگان را ببین. در مورد ساده زیستی نمیدانی نه, نه, نه تو ابن مایی چی تو... چیام بله دادی پسر مایی فزند بروند مایی از نطفه قدسی ما شکل گرفته ای آره، آره، نماید انقدر دنبال مال این دنیا باشه. خب ببین دادی اندی اگه واحد فرمانی مال دنیا خب بدش به من شما که ما شالله تو نیاورون و غلحک و زفرانیه و فلانه بیستا دیگه از این مالها داری دیگه از این مال دنیا ها. دادی, لا, لا, لا, دادی. لا. دادی. لا, با اواطف پدرانه ما بازی کن ها چکارکن دگر سگ خورد اگر دختر همین سردار تجدداده را بگیری اون واحد خوابه برج فرشت را میدیم به تو دیگه یعنی دست دختر بردم بگیرم بیارم بز... تو سوراخ موش ددی سوراخ موش کجا بود صد و خانه یا دیگه واقع مخاید... که ددی متاسفم یعنی من اصلا نزم میخوام نزم میگیرم اح واقعا نزد ناامید شدم آددی اندی اح. در ناامیدی بسی امید از پسر امیدت به خدا باشه بچه آدم هم میخواد از آدم بکنه حالا هم روی اون سندلی ما ساجنمای ما بلند یه بابا بیا دردی بیا من میرم اجازه بدم کنم منعقد بشیم سندلی بح بح تفادل تفادل الو سلام عزیزم یه دقیقه کشی رو نگاه دار یه دقیقه کشی رو مول دار به این سندلی ها ما ندیدیم بح بح بح بح خیلی پایین نرودهگه بیا یا باه بیا بالا بیا و بالا ها جای کشت و بیا بالا خوب می ماه عجب صندلی به مالی اتفا ذلله بابا.